بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واني وصحبه اجمعين اما بعد ما در داشت قبل بحث ایمان را که بحث ایمان در لغت بحث رو باز کردیم و گفتیم که ایمان در لغت مترادف با تصدیق نیست بلکه ایمان شامل تر از تصدیق هیچ وقت ایمان متراس 100 درصد و کامل با تصدیق نیست. چرا؟ گفتیم چون ایمان به امور و غیبی اطلاق میشه ولی تصدیق نه. میگیم مثلا اگر آبروی زندگی میگیم بابر کردیم و تصدیق کردیم که ابری و میگیم آمن تو ایمان آوردیم که ابری در آسمونه. هیچ وقت گفته نمیشه که ایمان آوردیم به ابری در آسمونه هست. ولی که به پیامبران ایمان داریم. اون امور غیبی پیش میگیم ایمان آن چیزی که باز باور داشته باشیم از امور غیبی بهش میگیم ایمان. و همچنین گفتیم که ایمان خودش متعادلی نمیشه، بلکه تاثیر خودش متعادلی میشه. میگیم آمانت الله، نمیگیم آمانت او، بلکه تاثیری میگیم صداقت و غیر از این گفتیم که چی سومی؟ گفتیم که ایمان.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 بعد وقت ایمان در اصلاح شد گفتیم که ایمان قول به زبانه گفتن به زبان عمل جواره و اعتقاد به قلبه ایا به عبارت دیگه قول قلب عمل قلب و قول جواره و عمل جواره و برای هر کدوم دلیل گفتیم درسته؟ برای هر کدوم از اینا دلیل گفتیم میمونه الان موضوع عبد میشه بحث الانمون این ایمانی که ما در شرع داریم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 یک بحث دیگه کمال مستحب فراترد اعمال ایمان کمال مستحب حالا ما ببینیم کمال مستحب چیه کمال واجب چیه واسل ایمان چیه و نقاطه کمال واجب چیه حالا هر کدوم از این مباحث هر کدوم از اینا صبح ثم ربنا الذين ثم من عبادنا ناير گفت که ثوارث الكتاب الذين سفنا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظالم لِنَفْسِهِ <تصفيق> خب. إن ايه را گفتیم خب بس این آیه ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه مش چی فمنهم ظالم لنفسه مش النقصان ومنهم مقتصد مش من ومنهم كمال واجب <مشي> اصل پیشقدم شدن و سبقت گرفتن و بر اونها عبزودن و مستحباتم انجام دادند. در نتیجه کمال مستحب را انجام دادند. خب این خلاصه بحث این آیه. الان موضوع جدیدی که ما داریم بحث ایمان و اسلام. چه ارتباطی بین این دو تا هست در شرح؟ شک درش نیست که وقتی ایمان و اسلام، به طور مفرد بیا در قرآن و سنت هر دو تا یک دیگر رو در بر می گیرن اگر بشه بحث مؤمن مسلمان هم شامل شد اگر گفته بشه مسلمان مؤمن هم شامل شد هست مثلا گفته بشه که مسلمان اوصاف شینی نبایدش این کاری بکنه مؤمن هم باید همونجوری کاری رو انجام بده فرقی نداره مسلمان و مؤمن لیکن این دو تا لب. اگر با هم در یک جا جمع بشن این در یک بیان در یک بیان معنای ولی اگر مفردا بیاد هر رو دربار بر میگیرن اجتماع افتراقه و از افتراقه اجتمع. مثل لفظ مسکین و فقیر مسکین و فقیر مثلا فقیر در لغت کسی که چیزی ندارن و مسکین کسی که یک کمی چیزی داره. وقتی گفته میشه مطلحا فقیر مسکین و دربار بیگرن و همچنین مسکین اگر گفته مسکین فتی هم دربار بیگرن لیکن اگر در یک جمله بیاد اولین صداقهی که میدید باید به فقرها برید و بعد به فرق کرد نکرد فرکرد پس نکر. فرکر. فخیر در این جمله شد کسی که چیزی نداره و مسکین کسی که کمی چیزی داره لفظ ایمان و اسلام پس به چه میاد اگر در یک جمله قرار بگیره اسلام اعمال ظاهری و ایمان اعمال باطنی حالا عدل بس. اولا حدیث قال من ایمان قال ان تؤمن بالله ثم كذا وكذا قال ما الاسلام شهادتين فان تقيم الصلاة و تا آخرش اعمال ظاهر این ابلين دليل بر این كاگر این دو طلب باهم جام بشن معانش و مختلف خب الله مثلها زیاده بر این مثلا در این قولوا آمنا بالله وما انزل ایلینا وما انزل الى ابراهیم قولوا آمنا بعد در اخر بگه ونحن له مسلمون سی یک مثال واضحی. حالا نوبه او کنیم تفسیر بین این دوتا. حالا بیمیم چه کمکی می‌کنه در تفسیر خدا آیات. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا غير بيت من المسلمين. باحکی لود. و هم سرچ. ما دوتو دو فاخرجنا من كان فيها اي من كان في هذه القرية. خارج کردیم. بیرون رو کسانی که در آن روستا بودن. من المؤمنین. مؤمنین را بیرون رو بردیم. فما وجد نغیره بیت من المسلمین. یک خونه مسلمان بیشتر ندیرین. مسلمان ها کی اینجا در این آیه؟ و مؤمنان چه کسانی هستن؟ فاخرجنا من که فيها من المؤمنین. مؤمنین را فارش کردیم. مؤمنین؟ لوت با کی؟ دو دو دخترش همسر شامل هست خیر. بخاطر همینی که میگه چی فما وجد نغیر بیت من المسلمی خونه مسلمان بیشتر ندیدی جوز مسلمان ها به حسام می اومد همسر هم رلوت یا نه جوز مسلمان ها می من. اومد منافق اگه در نظر بگیری ظاهرش مسلمان همسلمان نیست یک شخص منافق دیدید میگه مسلمان یا نمیگید بگید مسلمان، در باطن کافره به خاطر همینی که چی؟ خداوند در جاهای دیگر قرآن میگه که چی؟ دوتا همسران کافر که دردی دست پیامبران ما بودن که بوده؟ لوت با همسر نور درست این دوتا کافرن. چرا اونجا حکم کفت میده و اینجا میگه واجهت نغیر بیس من المسلمی از مسلمان ها یه خونه بیشتر ندیدیم بس خود به خود همسلولوت هم شامل مسلمان هست چرا اینجا میگه مسلمان چرا اونجا میگه کافر چون اینجا حکم برحث بشیه بر به ظاهرش ظاهرش مسلمانه ولی باطنش کافره بخاطر همین درجه و... من المسلمی از مسلمانان یک نفر نگو یک نفر نبسی بیت مسلم نگف خدا بند غیر بیت مسلم نگف او غیر بیت لمسلم نم نگف خونه یک مسلمان نگف من المسلمی؟ مسلمی جمع و مفرد جمع، وقتن همین دوخته لانوان شو خودشو خمسر شهر بندید اللہ مثال وزحترم هست قالت الاعراب آمن پس اینجا در خود آیه، آید ایمان و اسلام و هم فرده و همشینی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا قالت الاعراب آمنا و سما ایمان آوردیم به با انها بوده چی ایمان نیووردن بلکه مسلمان شدن مسلمان شدن یعنی چی؟ یعنی اصل ایمان را دارن لیکن مشکل دارن در جوانب دیگه در کمال واجب شد و در مسائل دیگه مشکل دارن پس چون؟ کمال واجب رابطه رو احسن انجام ندادن خدا من گفت که چی؟ قول و اتنم نا. گفت که بگید ما مسلمانیم. در هم داریم از اون احادیثی که هست در بخاری و مسلم از حدیث سعد که میگوید گفتم به رسول ما صلی الله علیه و سلم وقتی که غنایم را در خیبر توزیع میکرد سرش میکرد گفتم که بكاثوني دادي بكاثوني رجال نذادي، و ولم تعط فلانا وهو مؤمن، بفلان بفلان شخص نذادي وأم مؤمنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوا, أوا مسلم؟ أيه مسلمان؟ يعني عند باب التأييد، ناد باب السفهام، أوا مسلم؟ درسكم مسلمان؟ بعد می سعد میگه ای رسولان این جمله را چند بار تکرار کردن اوه مسلم به فنان شخص دادی فنان شخص ندادی اینم میگه نه مسلمانه پسی در یک سیاه مسلمان و مؤمن اومده مسلمان و مؤمن اومده معناشون فرق میکنه مؤمن میشه کسی که اعمال باطنی را به نحوه احسن انجام داده و مسلمان کسی که اعمال ظاهری را انجام داده و لازمه این کسی که اعمال باطن رو انجام میده اعمال ظاهرم داشته باشه خب حالا مبحث دیگری که ما داریم این مبحث مبحث فهم احادیث مباحث وعیدی که در احادیث اومده ما نگاه بکنیم احادیثی که در باب تحدید وعید اومده سبب شده که خیلی ها برداشت منفی بکنن. برداشت منفی استببت شده که خیلی ها را تکفیر بکنن در نتیجه خروج روی حکم، خوندریزی و کشتن و مسئله دیگه رخ خوده در مسلمان ها. مسلمان بیا دیگه مسلمان دیگه رو بپشت. آیا مرتفع سوال اینجا؟ و در رضع خوارد که نصوص وعید، نصوص دیگه نفی ایمان از یک مؤمن اومده که خوارد اشتباه فهمیدن، آلا ما میخوام بررس که آیا این ادله واقعا دلیل و مدرکی برای خوار چند یا نه آیا واقعا کسی گناه کبیری انجام بده کافر میشه یا نه کسی کسی رو بکشه یا زنها انجام بده یا دزدی بکنه به مسئله دیگه شکه درش نیست که وقتی که ما بحث مرتکب کبیره رو میکنیم شخصی رو میخوام مورد بردتی قرار بدیم که استحلال نکرده باشه یعنی نگفته باشه که مشروب حلاله یا بگه بی نمازی یعنی می‌دونم نماز ظهر کارش درسته نماز واجب نیست ما در این در رابطه با عصر تو بعد نمی کنیم کسی که محرم یا ح... یا واجبی را در خودش تاخید بکنه و حلال ح... حرام حلال بکنه یا حلال را حرام بکنه شکی در تکفیر و کافر بودن این شخص داریم ما در مشکل درکتی داریم که میدونیم چیز گناه و انجام بده از جمله نوسوسی که ما داریم از جمله احادیثی که ما داریم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفي ايمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني يكثي كزنا در حاله كزنا ميكونه در مؤمن حد يعني مؤمن يعني كزنا در حاله زناش ايمان نداره نفي ايمان شده يا لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخيه ما يحب لنفسه لا يؤمنو آره این نسوس که زیاد در خودش لا يؤمن احدكم کسی شما ایمان نبیاد آیا در اینجا نفع اصل ایمان یا کمال ایمان کمال ایمان لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخيه ما يحب لنفسه آیا خبارش این که برای خودشون پسندیدن به دیگران ندن می بودینه خودشون آیا کسی از ها چنین چیزی رو فهمیده؟ خیر پس با شناخت اون مطلب مطلب مباحث ایمان مبث کمال ایمان و کمال مستحب میتونیم این حادث را درد بکنیم و خوب بفهمیم. خب شاید یک شخص از شما دلیل و مدرک بخواد در اینکه بحث در اینجا کمال ایمانه چه دیل داریم در اینکه این مبحث در بحث نفی ایمان در اینجا در این احادیث؟ ده بحث, بحث النبي كمال الناف نافي اقليما ما دليل من القرآن هنا ايه دليل كل يوم ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آية زنا شركه آية خاصه من شيء ان حصار من حصرت كذا من شيء ما مخام بره خوده وبديگران آية خیر. خیر. این را را خدا شرک خیر ان الله لا یشرک به خداوند شرک رو ورده و دون شرک, شرک نباشه. و یعفر ما دون ذالک لمن یشاء شرک نباشه خداوند کسی که بخاط می بخشم حالا به طور تفصیل بادم این مبوا بادم مثال هایی زده میشه اصولا آنم بازم بیان میشه یعنی مبحث شاید باستر هم بشه در بحث متاره از جمله نصوصی که ما داریم ادله ای که داریم درش بحث فائده ماده به تحصیل اومده بحث عدم دخول به بهشت لا يضل الجنه قاطع لا يضل الجنه امام ولا عا نمام سخنچین و کسی که عهد ورده رو انجام میده ورده بهشت نمیشه یا قاطع الرحم ورده بهشت بحث که هم به نصوص وعی الان بحث ایمانه این ایمان چه موقع برداشته میشه آیا این نصوصی که الان در ایمان اومده نصوصی که در باره مثلا فلان شخص مؤمنیست من دوشی این مؤمنیست خیلی هم باز نمیشه الان بحث ایمانه خبارج بعد میدن این ایمان خبارج میدن این ایمان هر وقت نفت بشه در, در نصوص هر وقت نفت شد یا عدم ورود به بهشت شد همه اینها کافرن معوم نیست نفی نف این مجد. آیا هست یا نیست اللا این بحث ما اینجاست تا آیا این احادیث دلیل به مدرک برای اینها هست یا نیست خب نفی دوکله بهشت چطور ما باید پاسخ بدیم لا یا طول ج مثلن ما مو خب با چطور پاسخ بدیم گناه کمی را چکه برشه والا ما چند وجه دارند؟ وجه اول که مقصد میگن که در جمع این بین این حادیث و وحث بعید که میگن نفی در این حادیث نفی مطلقه به نیست اینکه کاملا بر اون شب بهش حرام, حرام بشه نیست بلکه مدتی بهش برش حرامه. مستقیما وارد بهش نخواهد شد و بعد از اینکه عذابش رو دید وارد بهش این جمع اول پس جمع اول اینکه چی جز اشخاصی نخواهد شد که مستقیما وارد بهش خواهند شد نفی نفی دخول اولی دخول در اولین محله نه نفی وارد شدن بهش اصل وارد شدن بهش دوما و ما در جمع این این احادیث چنین گفتم که نفی این بهشت بهشت معینیه لا يدخل الجنه یک جنته خاصی یک بهشت خاصیه و استدلال کردن به حدیث لا يدخل حضیرت القدس سکیر ولا عاق ولا منان پس در این حدیث مقیاد شده این جنت باید اون حدیثی که بطور مطلق مدنی در بس بهش بیاین احات بیاین حدیث که مقیاد بود مقید شد. در آن جداییت خود جنت نمام و لعاب. در این جداریم لايت خود حضیرت القدس حضیرت القدس یک جایگاه جای خاصی در بهش داره حضیرت القدس یک جایگاه جای مقزتی در القدس در بهش سکیر <تسجيل> ولا عاق ولا منان. بلى؟ حديث صحيح ابن خزيمة. حديث من حديث حديث لا صحيح ابن خزيمة. هندي قبل لا صحيح. لا يدخل حظيرة القدس لا يدخل حظيرة والضاد حظيرة الخدسي. سكير ولا عاق ولا منان.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 که این نفیه برمیگرده به مشیات خدا لایتول لا درست خدا گفته ولی که بر میگرده به مشیت خدا برمیگردونند به اون آیه اینالله لا یا فر لا یا فر یش کلمه نشان. لیکن این جنبندی و این پاسخ در این احادیث درست نیست چرا؟ مگر نگاه بکنیم نفی این بهش این بهشتی که در این خواستانی کلا ذد در گفتی دره مقعید اومده از درباره حک بندگانه نمامه ماام را پر ملکره کرده، در حتی والدین بدی کرده درسته نمیشه گفت که اینجا هم بعضگ شریت خداوند اگر خداوند خاص اونها را میبخشه شرک خدا می برشه و ما دونه شرک و خداوند برای هر کسیتی که بخواد می بره در چه دوتی که در حق خودش باشه اما در حق دیگر آنم میبخش خدا خیر باید حق گرفته بشه خاطر همین این نفت روی اصلش باقی یا برای اولین بار و بخلی وارد بهش نخواهد شد یا اینکه از بهشت خاصی محروم باقی نیست و طنتنا باطرو طفو يتحقق خط خدواني ورقسمت الجيوب خب از من نسيتي ان ما دارين ليس مننا من غشنا في مننا ليس مننا من نظم القدود وشق الجيوب از ما نيس كسي كتقلقك انغش بكونه از از سرش بزنه داد و بیداد بکنه و پیرهنشو فارغ بکنه آیا اینجا هم نفی از مانه بودن از مسلمانا نبودن بازم بحث کاملا مؤمن نبودن یا اینکه جزء کسانی که, جز که کمال واجبشون ناقصه از ما نیستن یعنی اینکه یعنی از ما مؤمنان هم شد رسول الله و صحابه از ما مؤمنان حقیقی نیستن. نه اینکه که اصلا به طور کلی مؤمن نیستن. نگفت که مسلمان نیستن. گفت که مؤمن نیستن. گفتیم در نوزن شرعی جاهای از ایمان به معنای اصل ایمان میاد. نفی اصل ایمان اگر نفی بشه و جاهای نفی کمال واجب که اکثر بحث کمال واجبه. حالا بحث لعنم همی طور. مثلا در حدیث داریم که اگر مثلا متبرج و که لباس پوشیدن مثل که لباس نکشیدن فلعنون فإنهون ملعونا یا لعن فلقمر عشا فلان و فلان و فلان و فلان این لعن لازمه ای لازمه اله اینه که اون شخص مؤمن نیست و مسلمان نیست خیر بخاطر خاطر اینکه خود در خود حدیث فان نه و بل بحث مسلمانان اونهایی که میان مسجد در خود حدیث رسول الله بیان میکنن از می زنان مؤمن که سالی که سوار زینهایی شدن که تشبیه به زین همین ماشین میگه زینهایی مثل شطور که سروج که میان کنار مساجد پیاده میشد بحث, بحث مسلمانان لیکن الا اینلا دلیل بر کفرشان نیست. مثل اون صحابهی که بیگ بیگه همسایهش بعد اومد و تراره الله مشورت کرد بعد بسانیلش رو بیرون از خونه نویخ بعد هر یک از اصحاب رد میشهدن میگفتن سوال میکرد چرا این کارو کردیم میگفتن چی؟ همسایه من رو کرده میگفتن چی خدا لعنتش بکنه لعن, لعن یک شخص معین الله اختلاف داره. شیخ البانی میگه که اگر یک شخص این چنینی کارهایی رو انجام بده یک زنی متبرجه بزنی اجازه دارید که خدا لعنتش بکنه لیکن اگر حکومت تنایی باشه اگر فردی نگینه ده دولت ندادن و آشوب کنه اما الان در دیگه امروزه نمیشه گفت ولی لعنه لعن خاص جایزه میتونی این اشخاص مثلا این زن یا مثلا شخصی که همیشه خم رو مشروب می‌خوره همسایتش اذیت بکنه میکنه، می‌تونه لعنت بکنه اون چیزهایی که در شهر اومده که لعنت براشون جایی داره شیخ مولوی شبرا رحلی میگه نه میگه المؤمن ليس طاعانه ولا لعان مؤمن لعن مؤمن تعالی به کبریت نگید میگه لعنه مشخص لازمه این که اون شخص تکفیر بشه الیکنallah مان نمیدرم، فکر نکنم که این مسوول تهیه بشه لازمه لعنت فکر نکنم لازمی شو تکفیره. این ما يعني چی؟ يعني از رحمتش ای از رحمتش ای شخصی میگه خدا نه نداشته بکنه. یعنی چی؟ از رحمت استادش بکنه. یا مثلا لازمی شه؟ خدا نه نداشته بکنه یعنی چی؟ خدا از رحمت او را محروم بسازد. حالا یه شخصی به خودش میگه چه سوال بکنه؟ خب پرسش رو داری حدیث نکنی. این یه اون شخصی دوختاری مثل متبرجه رو میبینی، فلان رو میبینی. چرا؟ نگیب خدا حدوتش بکنه چرا بگیب خدا لعنتش بکنه. ما اگر در حکمت حدیث خودستادش نگاه بکنیم حالا این خارج از زرد خاشی است ما اگر در خود اصل این حدیث نگاه بکنیم میبینیم که ورود این حدیث سبب داشته علت داشته رسول الله میخواهد یکی بیرمان برسوله با اونم بحث تربیت و تعدیبه که اولا ما به طرف این جهنمیان نریم اون اشخاص را ملعون بداریم و به هم بگیم که اونها ملعونن اگر نمیخوایی که بگی خدا لعنتش بکنه این خدا زنون بات براش لعنت بکنه حتی اقل کاری که میتونی بکنیم یک فایده به خودت برمیگرده که به طرف اونها کشنده نشید جهنمیان دومن فایده دیگه داره فایده به فرزندانت و همسرت فردا همسرت میشنه به کسی خدا این زن بی حجاب رو لعنت بکنه دخترت میشنه این حرفا حرفت میاد اینشین این رو انجام بده هیچ وقت اگر دیستش شنید دیگه روش میشه که همسرش یا دخترش بی حجاب بیرون بیاد و تو هم ببینی نگاهش بکنی روش نمیشه چون میدونه که تو بغض این اشخاص داری پس یک سایده تربیتی داره تعدیبی داره در ماها ما را تربیت میکنه. وقتی وقتی که انسان متنفر بشه از این اشخاص و اعلان بکنه تنفرش هم در خودش و هم در اصفیانش تأثیر می خب این بحث لعن او را خلاصه این نزد بید بله. دا خرون ما گفتیم که این لعن این لعن یک لعن خاصیه که بعد برمیگرده به گناه خاص یعنی اون گناه خاصش یعنی اون گناهی که سبب این همه شده اون گناهش خدا اون را نبخشه آیا لازمه لعن این که خاصی بشه یا حق نکنین حق اینجا حق خدا که نیست حقمون این دختر که متبرت بیرون اومده موهاشو بیرون بیرون آورده، حق منو شما رو پای کرده فکر منو شما رو مجبور کرده دل ما رو خراب کرده دل ما رو سیاه کرده درسته خدا من گذشت رو کنه حقق بندنده کنه راژه این حقق بند کن همش خدا من ببخشه پس کی تعادل و حل بشه بین بندگان به خاطر همینی که بحث لعن گیر اومده خاطر که حق بره پای مار کرده، که دل رو خراب کرده حالا ما این دل خرابمون باید درستش بکنیم چطور؟ مداقه دادم لعنونه فاینا من بلعن ولی گفته لعن خطاب به قرار ندی از اختلاف بریم بیرون ببین خدا لعنت به متفرده خدا لعنت بکنه بی حیله خدا لعنه بخونه که معاذه به خجابش نیست عام بیاریم خواف نکنیم خب خلاص این نوست اینه که گناه ها میتونن کف باشن و میتونن کف نباشن مثل مثلا مسخره و اینجور مسائل کفره کسان از اسلام خارج میشه مسخره به دین الان میاز بحثش باستر خواهد شد از گناه ها هم هست که کف نیست کسی که گناه کبیره انجام بده هم کافر نیست خلاصه یالا این مباحث به کبیره هم کافر نیست به کبیره ایمانش ناقص میشه من اندازه ای گناهش هر چقدر گناهش بزرگتر باشه ایمانش بیشتر کم میشه و این که کسی که گناه کبیره انجام بده خودش رو متعرض به خداوند کرده شاید خداوند ایو را ببخشه و شاید خداوند را نبخشه. خب، فعلا دلائل این که مرتکب کبیر کافر نیست. دلائل این که مرتکب کبیر کافر نیست و در جهنم خالد مخلد باقی نخواهد ماند. دلیل اول که مرتکب کبیر کافر نیست و این صاعفتانی من المؤمنی نقصتلو فأصله هو بينهما كات. يики كات دي كذا ربكوش. قران كبيرها هذي يعني. كات قران كبيرها. خب بس شر قدمان بيجي وإن طائفتان من المؤمنين اكتسالوا. فأصله بينهما. وإن طائفتان من المؤمنين اكتسال الأخذال. أكوشنا هم ديجار كبر كبيرها كبر هذي كبيريني. كبير كبيرها هذي. لكن خداوند گفت من المومنی ایمان دارم اصل ایمان مقصد چیه؟ اصل ایمان رو دارن هرچند که چی کمال واجب جون ناقصه چون گناه کبیر انجام دارم گفتیم با گناهان کبیره کمال واجب من کم میشه دوشن نقطه کمال واجب میشید. پس این دلیل تریشیه بر این که گناه کبیره کسی گناه کبیره انجام بده کافر و از جمع دلائل فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان إن جدى بريكي برادر مقتول بسورة ذلك فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان تر إن جاء بحث أخوات قاتل برادرت کیه اولیای مکتوب فمن عفي له من اخيه شيء فتبع بالمعروف واداه اليه باحسان خداوند اسمش بگذار برادر قاتل اسمش بگذار من اخيه از برادرش درسته برادر یکی خطاب میشه برادر مؤمن بحث بحث مؤمنانه از جمله ادالین حدیثی است که بخاری مسلم روایت می‌کند از عبدالله که کنیاش حمار بود که از مدرسه الله را به خنده در می‌آورد. مشروب کرد. شلاقش دادن. مشروب کرد. شلاقش دادن. بعد یکی از اصحاب بلند شدند و گفتند لعنه الله ما اكثر ما یکتا به لعنه الله. لعنه اشياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه كل لعنات لك چرا فان يحب الله ورسوله فانه يحب الله شن اصل ایمانه داره اصل ایمانه داره دوشار گناه کبیره شده و الله گفتن که يحب الله اگر کافر بود میگفت يحب الله ورسوله رسوله او یا نه هیچو کاری بس اینجا این شخص مشروب بود، گناه کبیر مرتکب شد، این احادیث همه در رد،, رد که خوارج اونایی که با مرتکب کبیره، اشباس را کافر کرده. خف، بازم احادیث زیاده، یعنی به جمله احادیث، حدیث مشهور که رسول الله سؤال کردن از بخاری مسلم، اتدرون امن الان مفلس، قاعدو المفلسو عندن امن لاده، دینا را لده ولده بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي إن المفلس من أمتي أزومث من المفلسية من يجي يوم القيامة بأعمال كالجبال وجاء قد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فقدت أخذ من سيئاتهم فجعلت عليه ثم في النار شقيق گوش ده دقت دیگه کسی رو زده کسی رو کشته گناه کبیره است دید گناه کبیره دیگر رسول تشگو من امتی ان المفلس من امت از من پس این شخص گناهکار کسی گناه کبیره را انجام داده رسول الله که قرار دادن جز امتش همچنین از جمله ادله ای که شیخ الاسلام فمی استدلال میکنه خیلی حدیث مستمیه و در بحث عذره جهل میاد وحسن يدرب الجهل مياد كي اكشت من شخصي كي... ك آه... ابن عباس الذي أصرف على نفس حديث حديث ابن عباس كي ميقول إذا ميت سوف أحرقوني اگر مورد من رأتش بدي دي كثمت من رأس المون اي قثمت من رأس المون اي قثمت من رأس المون اي قثمت من رأب فوالله لو قدر علي ربي لا يعذبني عذابا مع عذبه أحدا من العالمين كي لا خدابا بتونه مرو جمع كونه مرو عذاب بده عذاب يكيشي را اون چنان عذاب نداده سماع تفو عليه به مثل ما قال مثل ما قال فامر الله البحر أن يجمع ما فيه منه وامر البر أن يجمع ما فيه منه فتمثل قائما قلون ده سجودت از خشيه وعذاب و اون قسمت هاي بدنش كه درشتيخته جمع جمع كونند جم سنان ماوسات که خداوند ایستاد بعد خداوند بهش میفرمایند و میگویند ما حملک علامات صنعت چی تو تکنی کارا انجام بدی؟ قال تسبيحك يا رب فغفر له تو که خداوند عسیدم و خداوند او رو بخشید حالا این شرط که اسراف کرده كا بود در گناهان غیر از اون دو تا شرکی هم شده بود خداوند او بو رو بخشید الا چرا بخشید در باب وجوب جهل میات میاد که شخص چطور و چرا خودمان او را بخشی کنید غیر از این بحثی که این گناه ها خودمان انجام داده ولی با این وجود خودمان او را بارده بهش می آیا کافه وارد بهش میشه؟ خیر و آیات و احادیث زیادی هم هست بعد دوست که دستش قد بشه چرا خودمان حدود گذاشت چرا یه مؤمن با اچحلق داده بشه چرا نمی دست دوست قد بشه؟, بشه این همه ما واحد بعد بيجاذي بيهن كشي صاحب بناء كبير يكفّر نيس، والسريح ترنيمالك أنا محمد أنا مقولتي إن الله لا يخلّ عن يشرب تابير، ويكفّر مودون ذلك لمن أشاء. خوف تونيجه إن شاء الله كافي. خاتجه ذي ذيك إن شاء الله بحث زيادة إيمان ونقصان إيمان. هذا بين مرجع أهل وأهل السنة إن شاء الله ميزان مريض ب بدرس هاي شاء الله. چه سوالی ایندرا سبحان الله